بگتون رو آوردن تو رب فارسی یه چیزی جدیده و یه سبک خاصی شاید بازی منو من در به در رب باید پیش رفت کنه با ترحیم کشی ارزا بگه خب من حال میکنم با سم که رگتون بشین و بشت و اوزه بگم رگه من سفده داشت آره کم زحمت داره جوجه از من اره بوده و کار دوغه حتما راه دوره پس هم که مسالاتو دست پزن حالا با ربتم لالا میگیره وای وای وای, وای بگه چون دیگه دیر شد وارد کار شدی بحرم و نیموش پیش اون خود کار هاست بگه تون رب شده آهاز ربتون رو ترکنی تون دیگه دیر شد برد کار شدی آمادیوا لحظه مو خود کار حاص وگه دو آدم این شده آ این یه کار دشواره که جنگ نیدش بذا ببینی این بار ر با این رنگ جدیده شاگه تو موخه داری حسموااس بگی باهاش ولی یاده نره که همیشه بالا اسم تسمم که من آدم که مثل من پای کار اینجوری باواسط تو من قصدیه سر و سرمایه دار میدونیم وافصلره دردد که منحظثر به حرق حرف دارم واسه زده که منتظر مرگم هستن که اصلا حرفم رو به زحدی نمیره بدون ولی با دستت ته بکوبان منو ولی هستم سخت از چیزی که تو فکرت من هستم سرتر نظر من اینه که بیا کارتو تو ثابت کن ولی خیلی مونده تا تو بشی وارد به کارت تو دارم شاگرد من تو ایده دارم که کارنو بدم هر لسه دیگه سریت خارج شد میکروفونو بغل کنی چون دیگه دیر شد وارد کار شدیم بهرمونی و پیش پیشافتمو خود کار خاصه تو رو رفت و یه رفتی وسط شده آقا زبتونو ترک کنی دیگه دیر شد وارد کار شدیم Vamos dimos خود کار خاصه تو رو نصف شده آقا تو که خواب دیونگوشه بیدار بشو چون باید بشنوی سدای دیوار رکورد داره کلمات داغین حرکات خاص پس بزا وسد بنویسم برابشه با دینی مشو ما هم میخونن تا یا پیتر که چوکه هردن میتونن از سوش بده الان به حرفای بهرام حتما لازمه که تو به تسی مثل سگ دا اگه بچونی بخونی مثل من ولی بازم زیر منی که تو بدون هیچی یوهندو میره تو مخت نمیدونم آدما چی گفتن پشت سرم بد مخت من داریم. پس داری این به شهرت نده. فرصت من و شد وارد و رو بساد شده آقا رو شد وارد تون و شده آقا فایی که بند زدم به هد به تو مخد فرو بگی گرفت